ایران ویژه بازنگری در تاریخ قلم قلمرو میانی با نهایت تأسف 20 درصد اعتماد پایین اومده یعنی الان میزان اعتماد مردم به ایک دیگر یک چیزی نزدیک 33 درصد هستش. ولی خب چون قسمت دانشه زبان شناسی این کار ناپذیره نه. یه جاهایی داره رد خودشون نشون میده و یه سری از دانشمندان هم دارن میگن که این علم زبان داره به ما میگه که ورود آریایی به ایران خیلی قنط از این حرفا است. ما باستان ها و زبان شناسی داریم که بر اساس ای که از اون سرزمین اصلی تو ذهنشون بوده اومدن داده های باستانشناسی و زبانشناسی رو بررسی کردند نمونش مثلا یک مکتب باستانشناسی هست مکتب گیمبوتاس خانم ماریا گیمبوتاس که باستانشناس معروفی بودن و یک مکتب پایگزاری کردن ظاهرن در باستانشناسی به نام ایزد یکتا با عرض سلام و عدب احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید برنامه ایران وچ قسمت هفتم این برنامه رو ما در خدمت شما هستیم در قسمتی شیشون برنامه ما بیشتر حات مبنایی داشت و بیشتر حات روش شناختی داشت میخوایم در این برنامه برای تنوع که شده وارد یک سری مباحث تاریخی اینی بشیم و از اینیات بیشتر صحبت کنیم در قسمت گذشته خب فرصت پیش نیومد در خدمت جناب آقای ایران مهر گرامی باشیم جناب آقای ایران مهر خب هدف ما توی این برنامه همون که قسمت اول عرض کردیم بحث قلم قلمرو میانیه واسه قلم قلمرو میانی کجاست منظورمون دقیقا کجا هستش این قلمرو میانی بله خواهش میکنم درود بر شما و شنوندگان گرامی و با سپاس از کارشناسان بزرگوار که نشست پیشین خیلی مسائل خیلی مهمو بره. جامعه رو مطرح شنب. شنب. کردن خدمت شنوندگان من آی دکتر پیش از که به این بخش به پردازم حیفم میاد دو تا نکته کوچی که در حد در کدوم یک دقیقه من عرض میکنم یکی مربوط به نشست پیشه که من داشتم توجه می‌دادم به این مطلب که دوستان ما شنوندگان گرامی اگه میخوان اینجور مباعث رو پیگیری کنن یه مدار دقت بیشتری روی هر مطلبی بکنن ما به مطلب دقت به واژه ها این واژه ها رو هم سرسری ازش نگذرن ارجا دادیم و گفتیم که معنای واژه ها خب در گذشت و حال بعضیش تغییر کرده واژه هنر رو مثال زدیم بعد گفتیم اون چیزی که ما امروز می‌گیم نجات در دوران کوهن سرزمین ما بیشتر واژه چیسره یا چهر ازش استفاده می‌شده بعد اینجا گم شد که خب پس نجات واژه نجات مثلا تو شاهنامه هستش بله است بله واژه نژاد هم هست اما معنی که امروز بعد جنگ جانی دوم مستلح شده و این معنا بهش الهاش شده رو نمیده ما تو اون برنامه برابری که خدمت شما بودیم یه بار مثال زدیم گفتیم یک بیتشان هم هست که میگه درباره باری رو بل... میگه نجاد از دو سو داردی نیک پی هم از افراسیاب و زکاووس کی. کی خب این معنی چیه یعنی که از نجاد چیچیکه نه خیر داره پدرش خاندان پدری و خاندان مادریش رو معرفی پدر پدربزرگ پدری به پدربزرگ مادریش میگه نجادش از این پدر بزرگ که پدر این مادره که پدر اون پدره در همین حد نه قبیله یا نه یا نه نژاد چی چیه که این یا اونجایی که سام درباره زادن نوش رستن میگه میگه به زال آنگهی گفت تا صد نژاد به پرسی کسی این را ندارد به یاد که کودک ز پهلو برون آوردن بدین نیکویی چاره چون آورن میگه به زالانگه ای گفت تا صد نجاد یعنی تا صد پشت ما یعنی تا پدر بزرگه، پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ ما معذور شد پشت خودشه معذورشی نیست که مثلا از صد تا نژاد اگه بپرسی نداشتن هم چیزی مثلا نجاد ما داره داره تا کاملا معنی نژاد رو توضیح میده که همین جد خودت نیای خودت این پس در اون دوران گذشته ما این معنایی که امروز در دوران معاصر می‌بینید رو این بحث نژادیسم و نجاد، اصلا این معنی رو نداشت. اون از اون مسئله خانم دکتر احسانی تو نشسته پیش یک مسئله رو خب در دنباله نشاسته‌ای که داشتیم اونوان کردن. خیلی جالبه چون من مطالعات رو پیگیری می‌کنم یک مقالی خانم دکتر چند سال پیش نوشتن به نام کوش آریاییان از مفاهیم مندرآوردی دوران استعمار اونجا اتفاقا باز به یک فیلسوف هندی اشاره کردن دکتر کریشنا آقای دکتر کریشنا دکتر اونجا اشاره کردن که دکتر کریشنا در کتاب خودش در سال 1989 گفته که اروپایی ها وقتی اومدن در آغاز دران استعمار اول یک ما تعریف کردن که برتره و در برابر این ما یک دیگری تعریف کردن که همیشه مورد پجوهش اون ما قرار میگیره و مورد سنجش و داوری اون ما قرار می بعد دکتر احسانی اشاره کردن که آی کریشنا میگن که چگونه اروپاییانی که توانایی فهم مفاهیم دینی و فلسفی هندیان را نداشتند، اما با تکه و نیروی سیاسی و اقتصادی خود سنت های فلسفی هندیان را دستبندی ترجمه و تفسیر کرده و این مفاهیم را دوباره به خورده ایشان دادن بله. این مفاهیمی که اونا میشناختن خودشون ازش میدونستن چیه اروپایی‌ها همون گفتن نه چون ما داریم شما رو مطالبه میکنیم ما برتریم اینو گرفتن با که نمیفهمیدن چیه تفسیر به رأی کردن و اون تفسیرو خودشون رو دوباره به خورده اینا دادن این کارو اینا همه جا کردن حالا من این مثال میزنم اصلا شما بفرمایید این داستان کوچ رو تو کدوم سند گفته آریه‌ها در این زمان از بالا اومدن پایین سه شاخه شدن پارس و پارت و ماد. شما به من واقعا میری نمید. وایس نمیدونم دایسون کریستنسن گریشمن کجا اینو خوندن واقعا واسه گریشمن هم که وقتی میگه سند در واقع دسته اولی هم ارائه نمیده هیچ هیچ سند اصلا من میگم که اینجوری بود حالا شما ببینید اینا همین حرفی که کرشنا زده و دکتر حسنی اردن تو مقاله ها اینا چیکار کردن اینا اومدن اسناد کهن ما رو مطالعه کردن کاری که ما خودمون شما امروز برو دانشگاه تهران به استادای تاریخ باستان شناسی دانشگاه تهران بگو آقا برای شناخت تاریخ ایران باید متون اوستایی و پهلوی و شاهنامه و متون کوهن ایران رو هم خوند. میخوام. من رفتم گفتم خندیدن. من مسخره‌تم. گفتن خجالت بکش آقا اصلا ز... برای ما زشت افت داره اینا رو بخونیم وقتی کتابای علمی پیشرفته دکتر کیکی اگر از او آمریکا دکتر چیچی اگر از انگلستان هست میخوای یاد بگیری برو کتابای علمی رو بخون اینا چی در صورتی که من عرض می‌کنم هم آقای دکتر کیکی و فلانک از کجا اینا رو آوردن آمدن متون کهن بومی اینجا رو خوندن بعد گفت استنباط و استنتاج من از اینها اینه کتاب نوشت ارائه داد جالب خود ایرانیا نمی‌رن متونشونو بخونن ارجاعت میدن به کتاب‌هایی که اونا نوشتن از رو خوندن همین متون نه. یعنی آدم گریش میگیره حالا من عرض می‌کنم این کوچرو اینا از کجا درآوردن اینا اومدن یک اسطوری رو تو وندیدات خوندن که جمعیت زیاد میشه سه بار بهش گفتم میشه که به سمت سرزمین رو گسترش بده به سمت آفتاب یا به سمت جنوب سه بار گسترش بده یعنی یه چیزی فهمیدن که اینا به سمت جنوب حرکت کردن بله. این متون رو خوندن بعد اون اسطوره اومدن اسطوره فریدون رو خوندن دیدن فریدون سه تا پسر داشته سال این مردم سه شاخه, سه شاخه شدن شاخه شد. خب؟ بعد متهای مربوط به هرودوتو خوندن دیدن یه آدم به نام پارس هستن یا آدم به نام مادم هستن بعد من نمیدونم این پرت یا پرته یا این پارت رو این از کجاشون در آوردن؟ چون هیچ وقت تو ما اسناد دقت میکنیم پارت ها چیزی جدا از پارس ها نیستن بعدن در دوران عشقانی ساسانی جلوه میکنن ها. اما تا اون موقع گاهی بخشی از پارت ها خونده میشن و گاهی بخشی از مادها. این رو حالا به هر حال چون ذهنیت که حمجو خانم دکتر میگن ذهنیت حرکت به سمت جنوب و سه شاخه شدن رو از این اسطوره ها گرفتن گفتن خیلی خب دیگه من اروپایی باید بگم چی به چی بوده که اینا که بومی ها که نمیفهمن که آقا من میگم اینا از بالا آمدن پایین خب امروز ایرانن پس قبلا حتما بالاتر از ایران بودن دیگه پس آسیای میانه بودن آمدن پایین سه شاخه شدن چیزی هم که هرودوت میگه پارس مادو خواهی پارت هم بذاریم میشه صده آدور آینه بله واقعا توی نوشته هیرودوت ما از قوم پارت چیزی نمی‌بینیم. نداری, من, نداری. اصلا من به شما میگم نداریم با... استنتاج ها... اینا بوده حتی در قسمت های از نوشته هیرودوت ما داریم که مثلا کوروش هم جزو مادها به حساب میاد برای اصلا موردخین اون موقع بل. چیزی هستم ماد میدونست اصلا پارس هم حتی نمیشه حالا توجه دکتر شد خواهی بال وقتی میان یه چیزی رو میخونن بعد میگه آقا چون من میفرمم این ها که حالیشون نیست که بذار من تفسیر کنم بعد. بعد تفسیر میکنن تفسیرشون اینجور چلاق و کژو کولو و اینا درنیاد جالب ما میپرسیم اینا رو دیگه میگیم اصلا ولکن کن این من فقط خواستم این مثالو بزنم که ببینید ما کجای کاریم دروست. خیلی جای بدیگیر کردیم نمیدونم چجوری از چاله میخوایم بیایم بیرون حالا دیگه اون من برای که شاید تو این بخش اگر یه بار دیگه نوبتم شد در یک موضوع دیگه که حالا هست صحبت کنه اما امروز چون ما اصلا این برنامه ما آزنگری در تاریخ قلم روی میانیه این مقدار شاید گنگ باشه یک بارم تو برنامه گذشته خانم دکتر گفتن این مطلب اینجوری اینا درباره همین جایی که شما بهش میگین قلم روی میانیه حالا <تص> <تص> من می‌خواستم بگم که این قلم روی میانی شما فرض کنین که ببینید ما بعدها توضیح میدیم که استوره های شمال اروپا خیلی شبیه استوره های کوهن ایرانی استوره های جنوب اروپا خیلی شبیه استوره های و دوره میانیه تاریخ ایرانه حالا این چراشو ما توضیح میدیم آقای تالکین که به صلاح داستان کتاب دل لرد رینگز رو نوشت و فیلمش ساخته شد ارباب حلقه‌ها ایشون یک بارد. آلمانیه در جوانی علاقه من میشه مثلا آقای شلیمان که مثلا ایلیاد رو خون دفتر رو آره پیدا کرد علاقه من میشه به این اسطوره ها اسطوره های شمال اروپا اسطوره های آلمانی و اسکاندیناوی بعدا ما توضیح میدیم که این اسطوره های آلمانی و اسکاندیناوی چقدر مثلا خود اسطوره های کهن ایرانیه مو تقریبا مو ایشون این فinaly یهو چند سال پیش یک کارگردان از زلاند نو آقای پیتر جکسون اینو فیلم کرد سه قسمت و خیلی هم فروش کرد و خیلی هم فیلم جالبی بود. بنده اینو دنبال تحلیلاش رو اینا و خب دیگه این شباهتا اصلا میدونی کسی که فیلمو همینجوری نگاه میکنه میگه خب چه فیلم قشنگی بود. کسی که این تاریخ‌ها رو خونده فیلمو میبینه داره می‌بینه همون چیزی که رو کتاب خونده رو جو... سینما داره میبینه. اونجا یک سرزمینو تعریف کرده تو کتابش که بعد تو فیلم ما به نام میدنگارد یا هلی. مایدنگارد این میدنگارد واژه انگلیسی قدیمه حالا انگلیسی قدیم مثل مثلا مثل فارسی قدیم نیست انگلیسی قدیم منظور این 300 سال پیشه 3000 سال پیش که انگلیسی نداشتیم همین مثلا زمان شکسپیر اینا. این برابر لاتینش میدل ارس میدل ارس یعنی همون سرزمین میانه انسان ها در شهر های مثل تو این داستان مثل شهر در شهرهای مثل هلمز دیپ سرزمین روهان شهر گاندور در اینجا زندگی میکنن. سرزمین های دیگه مربوط به موجودات دیگه است. سرزمین مردور، سرزمین تاریکی مال اورکساس، سرزمین ها جداست و سرزمین حابیت ها هم جدا. جدا. جالبه. در جغرافی جغرافیایی که ترسیم میکنه، انسانها در سرزمین میانی زندگی میکنن. جنوبشون دریایی که دائم اینا با این دریا در ارتباطن. شما این دریا رو میتونید مدیترانه فرض کنین. میتونین خلیج فارس و عمان فرض کنین. منتهی داستان اینه که داستان های کوهن از اینجا به همراه این مردم رفته به شمال اروپا و در زمان بازگوی این استوره ها مشخصه که اون جغرافی ها و بومنگاری خود جایی که الان دارن زندگی میکنن و براش تعریف میکنن دیگه اما اگه شما بدونین این اسطوره از کجا رفته و چقدر شباهت داره به این داستان های سرزمین به فلات متوجه این میشین سرزمینی که در شرق اونا قرار داره مر نه درگان سرزمین که ما از طریف کوچندگان مرکز آسیا همواره مورد حجوم بودیم پایینمون دوتا دریاست که این دریا دریای زندگی برای اونا که ما الان بعدها میگیم که خلیج فارس چه رکن سرنوشتازیه در زندگی مردمان فلات این همین تعبیر رو آیه دکتر و وکیلی تو کتاب نویسنده کتاب های تاریخ کوروش خامنشی و اسطوره موجز یونانی هم تو کتاب تاری برای بررسی جمعیت ها تو سرزمین هایی که تو کره زمین زندگی میکنن اینها رو به این قلم بخش کردن قلم روی میانی قلم روی خاوری قلم روی آفریقایی و قلم روی امریکایی اروپا هم که اصلا قلم روی جدایی نیست اروپا بخشی از آسیاست بله. یک تیک زمینه شما میکنیم بینش مرز بگین کجا مرزشه دقیقا امروز مرزهای ترسیم کردن گفتن ما و شما یعنی اصلا محل زندگی انسان هم نیست اروپا چون نبوده نه جمعیتی پا گرفته نه تمدنی همین امروز امکانات رو از اونا بگیرین واقعا جایی برای زندگی نیست با استعمار شرق تونستن سرمایه فرامون کنه و الان اونجا حالا دارن همون سرمایه الان ازشون بگیرید دیگه نمیتونن تو هلند زندگی کنن شرایط اصلا سخته برای زندگی انسان نام‌هایی که امروز ما رو قاره‌ها داریم می‌بینیم این قلمروی میانی از حدود هندوکوش تا آسیای غربی شرق اروپا و بخشی از شمال آفریقا این میشه قلم روی میانی که کاملا آد انسانهاش تبارش زبانش فرهنگش با هم در ارتباط نامهاییم که رو قاره های امروز داریم میبینیم به صحیح قرار قراردادی گذاشته شده تمام این نام ها رو همین مردمان قلم روی میانی روی این قاره ها گذاشتن چه اقیانوسیه، خود خدا آسیا واژه اروپا حالا آمریکا که یکی از اینجا رففت یک دریا نوردی بود گذاشتن اونجا همه این نامها رو باز همین مردمان به صورت قراردادی روی این قاره گذاشتن من خواستم توضیح در باری مختصات این قلم روی میانی بدم عله. که شما با هیچ مرزی نمیتونی مردم رو جدا کنید شما هیچ طوری در تاریخ نمیتونی توضیح بدین ایران فلاتش اینجا مثلا مردمانش و جمعیتش و فرنگش تموم میشه و میان رودان آغاز میشه شما اصلا نمیتونی توضیح بدین اینجا میان رودان تموم میشه و مصر یا مثلا فلسطین آغاز میشه اصلا نمیتونیم کاری بکنیم ولی خب این مردم مشخص این مرضها تو این 300 400 سال اخیری به وجود اومدن اما شما میان قلم روی میانی و قلم روی خاوری کاملا میتونید تمایز قائل بشین پامیر و اون قسمت هندوکوش کاملا مردمان تبار فرهنگ اینا رو ارتباطاتی داشتن اما کاملا جدا کردن یا مردمان که زیر صحرا تو آفریقا زندگی میکنن دیگه با قرمرو میانی تقریبا تفکیک میشه حتی اونقدر هم در واقع جدا هم شدن حالا نژاد نه یه حالتش یه دکیچ جنیاتیکی بله. بموزم که مثلا رنگ پوستشون باطاشه اون زیرگونه است بله, بله. نژاد نیست بله. منظورم از قلمرو آمریکا هم همون سرخپوستان بومیان نه بله. مهاجرانی بله. که تازه رفتن منظورم اونان که حالا بعد برسیم من خواستم این مختصات یک توضیح داده باشم حالا اگه فرصت شد تو این نشست من یک مطلب دیگه ای درباره در باره بله. خیلی متشکرم باشی خیلی متشکرم جناب آقای ایران مهر گرامی تره بحث خیلی خوبی فرمودید در مورد مسئله قلم روی میانی و استفاده از منابعی که در توسط مردمان این قلم روی میانی تولید شده متنهایی که تولید شده توسط اونها برای پیگیری در بازشناسی این تاریخ دکتر حسانی میخوایم یه مبحث دیگهی با شما شروع بکنیم که با توجه به مطالعاتتون و تحصیلاتتون درباره ایران شناسی. برای بازشناسی و بازخانی و بازنویسی تاریخ قلمروی میانی چه امکاناتی در اصطوره های ایرانی و به ویژه اصطوره های شاهنامه وجود داره و آیا میشه از اینها استفاده کرد برای بازشناسی تاریخ قلمروی میانی یا نه بله درود به همه شنونده های گرامی برنامه بله در شاهنامه فکر میکنم ما تو برنامه های پیشین هم بله تا حدود صحبت کردیم گفتن دوستان من میخوام امروز فقط یک مختصری درباره این که ببینید ما وقتی که میگیم شاهنامه شاد الان من البته این توضیح رو بدم خب خیلی الان هستن این آگاهی رو دارند که شاهنامه منابعش چه بوده و واقعا یک کتاب شعر نیست مثل مثلا قزلیات حافظ و دیوان مثلا رودکی و اینا تفاوت داره با یک کتاب شعر صرف خب خیلی یا اینو میدونن ولی خب خیلی ها هم هست که ممکنه ندونن واقعاً کسهایی که میدونن منو ببخشندله اما من برای اون کسانی که ممکن هستش که حالا دغدغش دق رو نداشتن یا به هر حال فرصت نشده که مطالعه یا پرژوهش درباره این اینکه شاهنامه می چگونه پدید آمده داشته باشن خیلی مختصر میخوام فقط بگم که شاهنامه برای کسی که روی تاریخ و فرهنگ ایران میخواد کار بکنه. خیلی فرق می‌کنه با منابع یعنی با متون ادبی دیگه به خاطر اینکه همون طوری که در خود مقدمه شاهنامه گفته شده فردوسی کاری که اومده انجام داده اینه که یک کتاب تاریخی رو که موجود بوده بله. وجود داشته, داشته. یه چیزی حدود 10 سال پژوهش‌کرا روش کار کرده بودن نوشته بودنش از متون مختلف جاهای مختلف ایران گرد آورده بودند ترجمه کرده بودن اون رو به شعر در آورده نه نوشته هایی که در شا شاهنامه وجود داره نظر شخصی فردوسیه باید. نه نظر شخصی اون حالا پشتیبانان فردوسی هستش و نه هدف این بوده که بخوان ادبیات پدید بیارن هدف اون گردآورندگان و مترجمان و نویسندگان و شاهنامه این بوده که تاریخ ایران بنویسن ببینید یه گروه جمع شدن اون موقع تاریخ ایران نوشتن ما الان این را اصلا به رسمیت نمیشناسیم من نمیدونم واقعا چرا درک نمی کنم مثلا من از پیشگفتار بر ویرایش شاهنامه فردوسی فریدون جونیدی که فکر میکنم که کامل ترین چیزی هستش که در بوری گردآوری شاهنامه نوشته شده. یه بخشی رو میخونم که اون بخش از بیست مقاله قذبینی هست بیست مقاله قذبینی به احتمام عباس اقبال سال 1113 چاپخانه مجلس این بخش اصلا همه حرف رو میزنه یعنی اصلا من این رو بخونم شاید نیاز نباشه دیگه خیلی توضیح بدم میگه امیر ابو منصور عبدالرزاق مردی بود با فر و خیشکام بود و با هنر و بزرگ منش بود کام روایی و با دستگاهی تمام از پادشاهی و ساز مهتران و اندیشه بلند داشت و نژادی بزرگ داشت به گوهر و از تخم اسپهبدان ایران بود. پس دستور خیش ابو منصور, مؤمری. ابو منصور مؤمری وزیر ابو منصور عبدالرزاق حاکم خراسان بوده. دستور خیش ابو منصور معمری را بفرمود تا خداوندان کتب را یعنی کسایی که صاحب نسخه ها و کتاب ها بودند خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورند ام. یعنی کسایی که نسخه خطی داشتند رو این آقای حاکم دستور میده به وزیرش میگه کسایی که که کتب مربوط به تاریخ ایران نسخه های مربوط به تاریخ ایران دارن از شهرهای مختلف بیارید به دربار من دقیقا جمعوری منابع دیگه خیلی با... کار علمی و پجوهشی با... عظیمی انجام داد اون موقع و چاکر او ابو منصور معمری به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هوشیاران از آنجا بیاورد حالا بیشتر این صاحبان منابع رو از خود اون خراسان بزرگ اون دوره میارن چون ماخ پیر خراسان ماخ نام یکی از این اشخاصی هستش که منابع کوهن در اختیارش بوده از هری از هرات و چون یزدانداد پسر شاپور از سیستان و چون ماهوی خورشید پسر بهرام از نشابور و چون شادان پسر برزین از توس این نام یک سری از اون افرادی هستش که منابع کوهن در اختیارشون داشتن بله گرد کرد و بنشاند و به فراز آوردن این نامه شاهان و کارنامه هاشان و زندگانی هر یک از داد و بیداد و آشوب و جنگ و آین از کی مرس نخستین کس که اندر جهان بود که آین مردمی آورد آین انسان بودن و مردمان را از جانوران جدا کرد تا یزگر چهریار که آخر کیان بود در ماه محرم و سال بر سی و چهل و از هجرت من واقعا نمیدونم دیگه اختی این آدم میخونه دیگه باید من چه چیزی بر این بیافزایم ای که بگویم شاهنامه کتاب تاریخیست از نوشته های پیشینیان من اصلا هیچ چیزی نمیتونم این اضافه عجیبم هستش که بیشتر منابع مثلا میگه از هرات از نیشابور از توس یعنی از منطقه جغرافی های ایران خاوری. و این خیلی و این خیلی هم نقش داشته توی فردوسی شما اصلا فردوسی سلاسل شاهنامه را نگاه کنید اتفاقا این هم نقشه چون فردوسی هم بالاخره خدا که نبوده چیزش وحی منزه نبوده و تو این پژوهش مشخصه که مثلا یه پژوهش تاریخی دیگه و تو این پژوهش تاریخه هم می‌بینید که بیشتر اون تحولات ایران خاوری توش بولد هست باخته رو خیلی کم می‌بینیم توش خیلی کمتر توش دیده میشه بله ببخشید من لا می حالا البته خب به هر حال شما نمیشه واقعا اینجوری صرف این رو هم گفت که بیشتر تحولات شرق ایران به خاطر اینکه خب وقتی داره در بریس دوره ساسانی فرض کنه یک مثال خیلی واضح و اصلا خیلی آشکار صحبت میکنه دیگه ما همش در دوره کوهن تر رو عرضرض ولی حالا من یک چیزی میخوام بخونم الان. فقط به خاطر اینکه نشون بدیم که شاهنامه رو چگونه ترجمه کردن از متونه که هند ببینید ما الان برخی از منابع شاهنامه رو به پهلوی داریم بسید داستان شطرنج رو داریم مثلا چگونه گی پیل بله. شترنج بله دقیقاً داریم مثلا ببخشید یادگار بزرگ رو مثلا داریم که نامی ترسر مذارت بزرگ بزرگمهر وزیر انوشی روان و حالا منابع دیگری هستش که منابعی هستند که متن پهلویشون موجوده اون اشخاصی که اومدن توی درباره ابو منصور و شروع کردن به ترجمه متون اینا کارشون خیلی طول کشید یه چیزی فکر میکنم حدود 10 سال دینا بوده اگه اشتباه نکنم حالا الان خیلی وقت وقتام بذارم سرین و کار خیلی عظیمی انجام دادن حالا این بخشیه که معلوم میخوام بخونم به هر حال یا اونها ترجمه کردند از پهلوی و فردوسی اون نصر اونها رو به شعر در آورد یا اینکه خود فردوسی این بخش رو ترجمه کرده به خاطر اینکه آخر داستان بزرگ میگه که سپاس از خداوند خورشید و ماه که رستم ز بزرگ و مهر و شاه یعنی این بخش این کار یه کمی گویا این گفتگوی بین شاه و بزرگ کمی دوشوار بوده حالا میتونه همون در واقع برگردان به شعر از نصر فارسی دوشوار بوده باشه ما نمیدونیم ولی میتونیم این فرض رو هم بپذاریم که فردوسی خودش از پهلوی به فارسی ترجمه کرده این. ببینید من یه چند تا بیتش رو میخونم چون وقت نداریم وگرنه میشه خیلی شاهنامر اینجوری بررسی کرد آغازش که اصلا بزرگ میگه زمن یادگار است چندین سخن اسم متن ما هم از یادگار بزرگ میگه یعنی واجه یادگار اد یادکار حالا الان برای پهلوی خوندن هم ما مشکل خواهیم داشت به خاطر اینکه همونطور که توی جلسه برنامه جلسه پیشم آقای کریمی گفتن ما الان فعلا توی محافل علمی ایران ایران تارکید میکنم چون خارج از ایرانیطور نیست. الان تو محافل علمی ایران آوانویسی نویسی متون پهلوی به لحجه به اصطلاح مکنزی هست به مکتب مکنزی, مکنزی هست هستش مکتب مکنزی هم ویژگی که داره اینه که متون پهلوی رو با لحجه مانوی میخونه بله. نه که من این رو بگم خیلی یا بهش به نظر من تو ایران هم میشه برای آوانویسی لحجه های یه چیز ابتکاری در آورد که اصلا بشه هم گویش ها و لهجه ها و زبان های مختلفی که تر... طول در ایران بوده بشه و با اون نوشت چون واقعا این, این روش واقعا به نظر این ناکارامت هستش خب باید روش کار بشه واقعا کسایی که اهل فن هستن باید کار کنم بشن چون اخر جنبشی هم در اوایل مشروطه و خصوصا بین مشروطه و زمان رضا و و زمان رضا هم بود که اصلا خط را هم حتی بیان عوض بکنن چون این الان هم حتی مطرح هستش که نوع نوشتن خط با آوانویسی چون خط رو اگه بخوام با آوانویسی یکی بکنم مثل زبان انگلیسی هم تا آوا یکی باشه یه چالشی بوده که البته برخیششون حتی متامع استعماری هم داشتن برخیششون واقعا اینجوری هم نبودن انسان های روشنبین و روشنفکر هم بینشون بوده توضیح میکنم کنم بین کلامتون که به نظر میاد فرصت باشه بل. که در صحبت بشه بله اینو داشتم میگفتم که من الان فکر می که حالا این بخشای که از پهلوی بخونم به همون چیزی که فراگیر هست در ایران بخونم که به هر حال برای همه قابل فهم باشه ولی خب آوانویسی درستیدیست و من اینو نمیگم. این نظر خیلی ها هست. منطور میگن به خاطر اینکه سیستم دانشگاهی هم دست و یک دست و هماهنگ بشه دیگه ما باید یک آوانویسی در واقع مرجع داشته باشیم. قراردادی این, این انتخاب شده. شروع میکنم من اول اون بخش مربوط به یادگار بزرگ مه رو میخونم. مردم کدار فروختر یا کدار یعنی کدام؟ کدوم آدمی فررخ هستش؟ حالا شما بیت فردوسی رو ببینید این پرسش انوشی روان هست از بزرگ میره بدو گفت فرخ کدام است مرد دقیقا ترجمه هستی؟ ترجمه, هست ترجمه, هست. ترجمه هست. خیلی فهم. مردم کدار فروختر تر بدو گفت فروخ کدام است مرد دقیقا ستا واجه مرد، مردم، کدام و فررخ درش هست حالا ادامش که دارد دلی شاد بیباد سرد میگه که پاسخی که در واقع بزرگ مهمیده آنی اوناهتر یعنی آن کسی که بیگناه تر است چون گفت کانکو بود بیگناه دیگه ترجمه از این قشنگ تر واقعا آنی اوناهتر، کانکو بود بیگناه حالا باز دوباره یک بخش دیگری میگه که دادی یزدان وهی. یعنی قانون و در واقع فرمان ایزدان، ایزدی بهی هست، نیکی هست. حالا بیت فردوسی بدو گفت فرمان یزدان بهیست. که در گیتی از او فرهیست. فر البته خب فردوسی چون داره مصنوی می به هر حال یک چیزای اضافه میشه یعنی وقتی که معمولا این حالا اینایی که من مثالایی که من میخونم مصرع دوم کمی اضافه هست بر مبد پهلوی هست ولی این واقعا از اصل قضیه چیزی رو کم نمیکنه نمی نمی داد یزدان بهی بدو گفت فرمان یزدان بهیست بلد. یعنی عیناً انگار واژه واژه ترجمه شده دادی دیوان وطری یعنی اون قانون و فرمان دیو ها بدتری یعنی بدیست در بدتری راه اهریمن است از شاهنامه حالا به جای دیو فردوسی واجه احریمن را انتخاب کرده بدتریش که همونه مفهومم که همونه در بدتری راه اهریمن است دادی دیوان بدتری حالا مثلا یک بخش دیگه مطلی حومت پیمان می نشنی حومت یعنی اندیشه نیک حالا الان فرصت شکافتن واژه ها و اینا نیست پیمان منشنی یعنی در اندیشه متعادل بودن یعنی میان روی رهنه. تعادل در اندیشه حالا از شاهنامه خنوق در جهان مرد پیمان منش عین اصطلاح رو به کار برده این اون اصطلاح پهلوی رو به کار برده در شاهنامه میگه هوخت راستی هخت یعنی گفتار نیک راستی هم که معلومه اود هوورشت رادی و کردار نیک هوورشت یعنی کردار نیک رادی میگه رادی کردار نیک است راستی سخن راست گفتار نیک است و پیمان منشی یعنی تعادل در اندیشه داشتن اندیشه نیک هست دارد. حالا این بیت شاهنامه خنوک در جهان مرد پیمان منش که پاکی و شرم است پیرامونش بماند از او رادی و راستی در راستی دو راستی دو راستی از این طرف ایجیه آره نکوبد در کژری و کاستی اینا رو میشه ادامه داد ولی خب حالا فکر می کنم برای برنامه الان کافیه فقط میخوام ببینید که اون از مقدمه‌ای که در شاهنامه منصوری آمده درباره گردآوری کتاب اینم یک نمونه. نمونه نمونه خیلی کوچک از اینکه این مطالب چجوری ترجمه شده خب حالا چرا این کتاب نباید ازش استفاده بشه در زمینه پژوهش تاریخ ایران؟ برای ما من سوال بله دیگرم خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر احسانی از فرمایشاتون. به این دلشانمند گان گرامی ما به حالا مسئله شاهنامه الان پرداختیم چون یواشواش که وارد مسئله تاریخی میشیم مرتبا به شاهنامه ما استناد خواهیم کرد و در برنامه‌ی گذشته ما عرض کردیم که دیگه این مسائل در دنیا منسوخ شده اینکه بیایم یه متنی رو فقط یه استوری و افسانه بدونیم و یه سری خیال های یه قومی رو فرض بکنیم و بیا رمان بدونیم که به صورت شعر در اومده این مسئله دیگه تا حدودی در دنیا منسوخ شده با داستان افرادی که اومدن مثلا جنگ تروآ رو اومدن مسائل تاریخیش رو کاملا برشمردن و حتی کاوش‌های باستان‌شناسی چون در آوردن اصلا مشخص شد که اون جنگ تروایی که می‌گفتند یه افسانه است و در واقع افسانه سرایی بود و رمان بود و مسائل تخیلی بود کاملا مشخص شد که چنین چیزی هستش و اینجا هم نباید با این مثلا اینجوری برخورد بشه که یه سری شطحیات ذهنی بوده که از قبل بوده اینا راه آورده کرده که همونطور که خانم دکتر هم فرمودن اصلا جمعوری رفرنس ها و منابع تاریخی برای نوشتن شاهنامه خودش اصلا یک داستانی بود که فرمودن خانم دکتر و به طور کاملا علمی هم جمااوری شده چون مثلا الان خب جمااوری رفرنس خب افراد میان تو کتابخونه ها صحبت میکنن میان رفرنس میدن فیش برداری میکنن از بزرجون که حالا که اینترنت بالا بیشتر راه افتاده و ما تو اینترنت متاسفانه حالا برخيام این کارا رو انجام میدم مثلا برخی کتاب هایی که هنوز هم داره تو بازار هست بیان زش در واقع نسخه پی دی اف درست میکنم میذارم تو اینترنت کاری ندارم با این مسئله ولی اون موقع بهترین و علمی ترین روش جمع اطلاعات بود اتفاقا حالا البته ما تو تاریخ هم داریم به کتابی من دیدم الاسماء القند فی علماء که مولا قرن پنجم هجریه که اصلا میگفت که اونجا اون موقع فقط شهر سمرقند یک کتابخونی داشت نزدیک 200000 تا کتاب توش بود و زمان دولت سامانیان یه چیز شبیه هتل فرهنگی ساخته بود البته کاملا مجانی بود هتل هر پجویش که از همه جای دنیا می اومد پذیرایی میکردند زمین های رفاهش فراهم می کردن و هر چقدر هم دوست داشت میومد اونجا پژوهش می کرد و از کتابهای اون کتاب اون کتابکنه استفاده میکرد و پژوهش خودش رو انجام میداد. نشون میده که در اون موقع هم ما روش های علمی و درستی برای، جمعوری اطلاعات داشتیم با اون که حالا مثلا از زمان حمله اعراب گذشته بود و بعد منابع ما مکسند از بین رفته ولی نشون بده که اون منابع هنوز بوده چون برخی از ایرانیان زمان حمله اعراب به سمت شعر وسط هندستانه رفته بودن تا حدی منابع رو داشته بودن خب ما هیچ جای دنیا نمیدونیم که کتابی که مال هزار سال 1200 سال گذشته باشه الان مثلا ازش ما یه چیزی داشته باشیم خواهد خب حتی اگه از پوست و حیوانات هم نوشته شده باشه از کاغذ اون موقع هم نوشته شده باشه تا حالا پوسیده و از بین رفته این چیز طبیعی هم هست از بین رفته باشه لزوما از یه سری منابعی که در اون دوره از روی این منابع با استفاده از جوابگویی گردآوری اطلاعات اون منابع قدیم و کهنتر استفاده شده ما میتونیم این چیزا رو بررسی بکنیم. چطور مثلا میشه ما مجموع آثار افلاطون که آخرین قدیمی ترین چابی که الان مال سی سال بیست سال پیش هستش و نسخه نویسی شده و هیچ منبعی ما نداریم که مثلا یه نسخی مال هزار سال پیش چه برسه مال دو و سال پیش که مال خود افلاتون باشه لذا این گونه اعتماده به منابع هم میتونه کمک بکنه برای این هدفی که ما داریم چدا باقایی کردیم ای در این چند ای که ما به پایان برنامه باقی مونه نزدیک هفتش دقیقه از به حضورتون که در خدمت شما هستیم در مورد حالا تخصص خودتون زبانشناسی و استورشناسی. حالا میدونیم که حالا مسئله یک بحث کلی رو نمیتونیم اینجا باز بکنیم با که در واقع در این برنامه مطرح شد زبانشناسی در مورد استفاده از منابعی که برای استورشناسی برای خانش تاریخی از این اسطورهشناسی چه امکاناتی داره که در اختیار ما قرار بده به نام خدا با دودو فروان این خواهم دویتو. از جناب استاد فیدون جانیدی یاد کردن جادره بندم ازشون از ایشون یاد کنم بله. استاد بنده بودم و من تا وقت زنده هستم خودم وانداریشون می دونم دام بله. هر جسدن تندرست باشن در مورد این که فوادیم در از غرب کم گفته، اصلا هم چیزی نیست و بگم که در شانه ما سرزمین هااماورانا داریم که در غرب ایران و داستان کیکاوس که, که از زیباترین داستان شاهنامه است، که بنابر مگه این فیلم بکنن در کل دنیا پرفروش‌ترین فیلم جهان خواهد شد. داستانی مثلا در کشور کره بوده و داستان جومونگ ازش از سریالی ساختن، محبوب‌ترین سریال در ایران شد. چطور مثلا ما ده ها و صدها داستان خیلی قشنگ‌تر و شیرین‌تر از این داریم ولی خب کسی حرکتی نمیکنه برای ساخت فیلم از اینها که حالا متاسفانه نه بودجه برای اون اختصاص داده میشه نه کسی همت میکنه بیاد از یک چنین اسطوره ها و از یک چنین داستان هایی که بعضر حتی واقعیتر از همون داستان هایی هستش که سریالهای های خیلی محبوب ساخته شده کاری رو در واقع انجام نمیده بله من به نظر خودم شخصی بنده است که کیکاوس یکی از زیباترین داستان های جهان فوق است بله همون‌گی فهمودم این که سردمه‌اوران در غرب ایران اس اتفاق می‌افتت هست غرب ایران هستش یعنی در شانه بسیار از آن اشتباه نکردم چون معذرم می‌خوام داشه نیزه‌وران اگه اشتباه نکردم این اصلا اینا همه اشاره به غرب ایرانه. هست یعنی در که اسطوره اونجایی که تو داستان ایران اونجا دو خوانو بردایدم من به رسم امانت‌داری نمی‌تونم دقیقاً براتون بگم کجاست چون ایشون زنگ زدیشتم من به عنوان امانت‌داری باشم البته به با من شاگرد از سرزمین سرزمین قبیلون بسیار یاد شده حتی از مصر هم یاد شده ایشون همه اینا رو ورکاوی کرد بعد در ماده ارتباط اسطوره‌شناسی و زبان شناسی یاد دوتا هم مثل امواج الکترومغناطیس می‌مونن بله و است به مغناطیس احتیاج داره من هم ولی الکترو است هرگز نمی‌تونن هم جدا بشن زبان شناسی بدون اسطوره‌شناسی و یا اسطوره‌شناسی بدون زبان هر دو تاش کنند اصلا ما رو به بیراه می‌برن بعد خدمتتون ارز کنم که اتفاقا نظر ما رو اسول شناسی و کمک زبانشناسیه چون الان مثلا چرا باید کتابی مثل ما آغای بنونیست بیاد بنویسه بیاد بگی جامعه آریایی بیاد برای ما تعریف کنه چون ما ایرانی نقد بکنیم چرا وقتی استاد فید جنیدی میاد از دوختن و بافتن در زبان هند صحبت میکنه چرموناد بدین که این گفتگوی شاهنامه درسته وقتی میاد میگه اقا اینا دوختن و بافتن و یاد گرفتن اگر ما واژه بافتن ما خود مقاله نوشتم توی زمینه اگر واژه بافتن الان توی زبون ما تو زبان ها و تو آلمان و تو اسکاتلند کشور کشورهای اسکاندیناوی در قطب شمال یکیه پس نشون میده که اینا قبل از جدا اینو بافتن یاد گرفته بودن پس اگر فردوسی بزرگ بار داره از بافتن یاد میکنه داره از زمانی بافتن داره صحبت میکنه این زمان زمانی پیش از جدایی یا هم میخوانی هندو اروپایی است. یعنی کاملا ما میتونیم به وصلی شاهنامه یک جامعه شناسی بسیار جامعی از زندگی آریایا بدیم که مورد چرخشون، صفالشون، پزشکیشون کشاورزیشون به ویژه میکنم این کلمه ریسندگیشون، بافتنشون که اینا بنیاد یک فرهنگه اسم شما تو داخل ایران اینا رو بینید جاش خالیه میاد چرخو که اختراع کرد میاد سومریو خب اگه سومریو چرخو اختراع کرده بچه تمام گاردن جهان اسمش ایرانیه چهره کاسیا 1600 پیش از میلاد واژه از واژه آریایی استفاده کرده واژه سومری استفاده نکرده خود عهد چون اومده از ایرانی استفاده کی آریایی استفاده کرده حتی جهان شازادانشون واژه با تشدیدش در مصر اووردن که بس اینا چجور قوم وحشی بودن خب خنده قوم وحشی که لباس سوختن بلد بوده بافتن بلد بوده کشاورزی و بلد بوده چرخ و بوده ریسندگی بلد بوده کشاورزی و بلد بوده اگر این اسمش وحشیگریه که ما خیلی افتخار می‌کنم جزو وحشی باشم اگر اون اروپایی‌ها که هیچی ندارن جز تمدنه و خداوشه که ما جز متمدن نیستیم بعد این سری از زبان شاسی ما میبینم که خیلی داره آمیانه میشه خیلی بده مثلا ما می‌بینیم تو این ورمبر که مثلا یکی کسی زبان یاد میگیره مثلا زبان فرانسوی انگلیسی یاد میگیره میاد میگه که آقا هیچ ارتباطی به هم ندارن خب ایراد کار ما اینجاست که تو کاری که هیچ سررشته‌ای نداریم دخالت میکنیم بله اصلا این کار تو هیچ جای دنیا رایج نیست خب اینا خواسته یا ناخواسته دارن آب آسیاب غربیا و اسمرگرا خب نباید تو کاری که هیچ سرشی از اون نداریم دخالت کنیم یا نظردگی کنیم ممکن کسی باشه پنج یا هفته زبان بلد باشه اصلا آدم نابقهی که بیش از پنج تا هفته زبان غیر از آنماده خوبشون بلدن و چون آگاهی حتی در حتی ابتدای آغازین از دانش زمان ندارن میان میگن مثلا نه این رو با هم ارتباط نهرن خب مردم چون نمیدونن بعضی اونها اعتماد بود چون خود مردمم با درسای مثل زمان شناسی اصلا تو کل ترس داش نیستن مثلا لزومی هم نداره چون مردم عادی هم آشنایی داشته باشه نه به نظر با... باشه حتی حتی اولی باید باشه چون باید بشناسند الان خب مثلا من یه مثال میزنم ما زبان از زبان اوستایی بگیرید تو فارسی باستان و پهلوی و دری و های بومی ایران از سورات بگیرید تو کردستان بزرگ پر از واجه های هم همریشه با گروه هندو جرمنی مثل آلمانی البته این میگم این تقسیم اندیار ما خودم قبول ندارم ولی خب میتونید که الان هستش مثلا آلمانی، انگلیسی، نروژی، دانمارکی، سوئدی، هلندی ما ریشه کردی پیدا کنیم تو سوئدی فقط در کردی پیدا میشه در سوئدی خب اگر این آلمانی پدر است آن سوئدیه بچه این ریشه در آدم آلمانی نیست کردستان کجا سوئد کجا؟ این یه سودی اومده به کردستانی ما یاد داده یا یه کردستانیه ما رفته به سودیا معلومه است که هزاران سال پیش اونها یکی بودن جدا بلده. شدن از هم ما اعتفاق داریم, داریم که میتونیم بگیم که آقا گوروی ژرمنی از کدوم قسمت فلات ایران بیشتر تأثیر اله داشته مثلا میتونیم بگیم که قسمت مازندران و گیلان خیلی به زبان لاتین نزدیکه قسمت میانه و غرب خیلی بیشتر به ژرمنی نزدیکه حتی بعضی موقع بلوچی شما مثلا می دیدید حتی در شاهنامه پیوند کردی و سیستانی شما উচিত ببینید بانه که در اسم گودرس هستش ما می‌بینیم تو س... حتی مثلا می‌بینیم سیستانی هم خیلی تمایل به انگلیسی و آلمانی داره خیلی جالبه ولی یه زمین می‌بینید بالاتر سمت شرق ایران میز باز یه فرق می‌کنه شما می‌بینید مثلا تو مازندران می‌بینید یه شهرش مثلا اسم یک جانور رو به زبان انگلیسی میگن یا میصد صد به طور عطف به زبان ایتالیایی میگن آیا ایتالیایی اومده اونو یاد داده یا اینا رفتن به ایتالیایی انگلیسی شرق تازه جاده کشیدن میشه رفت امر یاد داده. اصلا هم چیزی نیست. یعنی نشون میده که قانون گسترش این زبان، این فرهنگ یا این نژاد همین فلات ایرانه. یا یعنی مثلا ما تو گروه اسلاوی میبینیم واجد بسیاری زبان چک، اسلواکی اسلوونی، لاستان روسی، اوکراین، یوگوسلاوی سابق مثل کرواتی، صرب و داریم. مثلا سیستم شمارشی ما در اوستا خیلی شبیه اینه. ولی جالب اینجاست که سیستم فریدون خیلی بیشتر شبیه آلمانیه. شمارش در واقع بله باشه شمارش اون خیلی مثلا شبوی اسلاویه ولی فلام میشه از که با شبیه اسلاوی باشه شبیه جرمنیه تقا مشخصه که هر کدوم از این گروه های زبانی که شدن یک وجهی از زبان و فرهنگ ود به شما دقیقا همینه یا با گروه های لاتین مثل ایتالیایی اسپانیایی، پرتغالی کاتالانیایی فرانسوی، رو با گروه سیلتی ایرلندی باستان و ایرلندی نوین یا گیدی اسکاتلندی اصلا گیدی اسکاتلی آشکاره است ایرانیه آیا این هم شانسیه اگه شانسی ما خیلی خوششانسیم که این هم خوشش. شانسی داریم چرا مثلا چینی ما هرچی همش شانسی نداره چون عربی همش شانسی نداره دقیقا خیلی متشکرم جناب آقای کریم این فرمایش تو اینجا داشته باشین چون تو شما حالت جزئی هست هنوز ما وارد جزئی یاد نشدیم خب اینو خدمت شما گردان عزیز عرض خواهیم داشت موقعی که وارد دوره های تاریخی میشیم و شکل بعد دقیقاً شکل فرهنگ میشیم بعد ریشه های اینها رو تو فرهنگ های دیگه هم خدمت جز به جز ارائه خواهیم کرد که از کدوم وجه از تمدنی که برای اولین بار شروع میشه مثلا برای اولین بار آتش شکل میگیره برای اولین بار مثلا همون سناعت فلاحت زراعت به وجود میاد و واژه‌های اون چه سیره در واقع تکامل رو طی می‌کنن و از چه راهایی به چه زبان‌هایی و به چه مناطقی راه پیدا می‌کنن خب این خودش جزئیات این خیلی شیرین و بحثایی جذابی خواهد برایش گرامی خیلی متشکرم از هر سوت کارشناسه برنامه وقت برنامه یه یک دقیقه هم هست که تمام شده و شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت هشتم به خداوند متعال می‌سپاریم خدای یار و نگهدارت